گربه پیرزان روزی بود و روزگاری بود یک پیرزن بینوا بود که در ای قدیمی زندگی می‌کرد و گربه ای داشت لاغر و رنجور که از کوچکی در آن خانه بزرگ شده بود و با پیرزن انس گرفته بود یک روز بچه‌ها او را در کوچه ترسانده بودند و یک بار هم سگ‌ها دنبالش کرده بودند برای همین دیگر پا از خانه بیرون نمی‌گذاشت و با گرسنگی و قناعت زندگی می‌کرد گربه بد وقت فقط بوی کباب را از خانه همسایه شنیده بود و رنگ نان تازه را فقط در دست مردم دیده بود. خوراک او هم در این خانه نان خشک بود و گاهی هم کمی از شورباگ پیرزن. تنها چیزی که آرزویش را داشت این بود که انتظار بکشد تا از سوراخی صدای موشی بشنود و مدتها در اطراف آن کمین کند تا آن را به چنگ بیاورد. آن وقت، به قدری خوشحال میشد که گویی دلش نمی آمدان را بخورد ساعتها با او بازی می کرد بود و بود تا یک روز که گربه لاغر به جستجوی خوراک تازه تری با زحمت بسیار از دیوار بالا رفت و خود را به پشت بام رساند و از همه طرف بو کشید تا ببیند آیا بوی خوراکی از کجا می آید همین که چند قدم روی دیوار پیش رفت ناگهان روی دیوار خانه همسایه یک حیوان قوی هیکل گردن را دید که با سبیل از بناگوش در رفته و با قدم سنگین آهسته آهسته پیش می‌آید. گربه پیرزال اول خیلی ترسید و خواست فرار کند ولی از بیحالی توان فرار کردن نداشت برای همین به نظرش رسید که آن حیوان هم گربه است و از جنس خودش است و همینطور هم بود این بود که همانجا ایستاد تا گربه بزرگ رسید و آن وقت چون از قیافه و اندام و هیکل او خیلی خوشش آمده بود گفت به به رسیدن به خیر خیلی خوشحالم که از همجنسان خود گربه ای بزرگ و زیبا و چاق و خوش هیکل میبینم آیا ممکن است بگویی که این قدرت و عظمت تو از کجا آمده؟ گربه بزرگ جواب داد از لطف تو ممنونم من اول که تو را دیدم از بس لاغر بودی خیال کردم انکبوتی اما حالا میبینم تو هم گربه هستی خب اما اینکه میپرسی چرا من اینقدر چاق هستم علتش این است که خوب میخورم خوب میخوابم و تا بتوانم خوش میگذرانم و این است که چاق و چله هستم گربه لاغر پرسید مگر تو چه میخوری و خوراکت را از کجا میآوری؟ من ریزه خور خان سلطانم هر روز در آشپزخانه سلطانی حاضر می شوم و مقداری نان روغنی و مرغ بریان و کباب بره می خورم و تا روز بعد سیر هستم باقی اوقات را هم یا به بازی و تفریح میگذرانم و یا استراحت می کنم مگر نمی دانی همه با خوراک چاق می شوند و کسی از باد هوا چاق نمی شود اگر تو هم مثل من زندگی می کردی مثل من چاق می شدی گربه ی لاغر گفت راست میگویی ولی اینکه که گفتی مرغ بریان من در عمرم اسم آن را هم نشنیده بودم و رنگ کباب بره را ندیده ام میدانی خوراک من چیست قدری نان خالی گاهی هم کمی شور با پیرزن و اگر به دست بیاید گوشت موش گربه بزرگ خندید و گفت همین است که اینطور لاغر و مردنی هستی تقصیر از خودت است آخر موش هم خوراک شد موش فقط اسباب بازی برای بچه گربه هاست به عقیده من باید فکری برای خودت بکنی چون عمرها خیلی کوتاه است و باید تا ممکن است خوشگذرانی کرد و هرچه از هر جا به دست می آید باید خورد و گرنه گرفتن موش خانه پیرزن و این هم زحمت کشیدن و به نان و شوربا قناعت کردن مایه ننگ گربه های دنیاست گربه ی حسابی آن است که در یک خانه پابند نشود همه جا برود و بیاید و بهترین خوراک ها را بخورد گربه لاغر به التماس افتاد و گفت ای دوست بازرگان حالا که چنین است من هم آرزوها دارم مرا راهنمایی کن تا من هم در آشپزخانه سلطانی شکمی از ازا در بیاورم همیشه دعاگو خواهم بود گربه بزرگ دلش به حال گربه لاغر سوخت و قرار گذاشت که این دفعه وقتی به آشپزخانه سلطانی میرود او را هم خبر کند و از هم جدا شدند گربه پیرزن از خوشحالی با این وعده جانی تازه گرفت و از بام آمد پایین و موضوع گفتگوی خودش را با گربه چاق برای پیرزن شرح داد. پیرزن گربه اش را نصیحت کرد و گفت این که تو میگویی لابد یک گربه ولگرد و بیبند و بار است که هرگز موش نمیگیرد و به صاحب خانه خدمتی نمی کند. همین پرخوری و دزدی در آشپزخانه ها را بلد است و این کارها عاقبت خوشی ندارد. حرف مرا بشنو و به همین زندگی آرام و ای که داری بساز و بدان که هر جا مرغ بریان هست خطر جان هم هست. ما اینجا راحت زندگی میکنیم و برای خودمان آسایشی داریم. گربه لاغر گفت همه این حرفها درست ولی من دیگر نمیتوانم نان و شوربا بخورم من دلم کباب بره و مرغ بریان میخواهد. در این خانه که هیچ وقت این چیزها نیست حالا هم که یکی پیدا شده و میخواهد مرا به مرغ بریان و کباب بره برساند تو نمیگذاری عجب پیرزن بدی هستی پیرزن گفت عزیز من این حرفها حرفهای اشخاص بی تجربه است آن کسی هم که میخواهد تو را به مرغ بریان برساند دوست تو نیست گربه نیرنگباز و آواره است که در هیچ خانه‌ای راهش نمیدهند و با دزدی زندگی می‌کند وگرنه مرغ بریان و کباب بره را برای گربه نمیپزند. تو اگر دوست خیرخواهی داری من هستم که تو را بزرگ کرده‌ام و همیشه در دامن خود نگاه داری کردم اگر باز هم نمیشه خود دانی اما گربه لاغر چنان هوس کباب بره و مرغ بریان به سرش زده بود که این حرفا به گوشش فرو نمیرفت. روز بعد هم دنبال گربه ولگرد خود را به آشپزخانه سلطان رسانید. از غذا وقتی رسید که ساعتی پیش از آن یکی از گربه های بازیگوش یک قطعه گوشت از آشپزخانه دزدیده و فرار کرده بود. و خدمتکاران از دست گربه ها خشمگین بودند اما گربه پیرزال از این موضوع بیخبر بود همین که بوی غذای گرم به دماغش رسید از خود بیخود شد و به طرف گوشتی که در گوشه آشپزخانه چشم نوازی می کرد حجوم برد و هنوز دستش به گوشت نرسیده بود که تباخ با سیخ کباب به او حمله کرد سیخ کباب مانند تیر به پای گربه خورد و پایش مجروح شد و گربه بدبخت با پای زخمی لنگ لنگان به فرار گذاشت و دوان دوان به خانه پیرزن بازگشت بعد هم با خود عهد کرد که دیگر به حرف گربه ولگرد گوش نکند و به تمع خوراک رایگان جان خود را به خطر نیندازد و قدر زندگی راحت خود را بشناسد